عن سلمة ابن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء خاتم النبيين واله وصحبه أجمعين أما بعد ديبيستوس حدیث از حدیث صحیح در مفرد فرمودی رسول الله صلی الله علیه وسلم من اصبح آمناً فی سربه من اصبح آمناً فی سربه کسی که روزش با امن و امنیت در نفس خودش از کسی نمی که بیاد او را بکشه و روش بکنه امنیت یک نعمت امنیت در جانت امنیت در مالت امنیت در ایمانت امنیت یک نعمت امنیت یک نعمت چه بر خود، چه بر مال، چه بر همسر و فرزندت امنیت یک نعمت امنیت آسایش میاره آرامش میاره و این آرامش و آسایش که نتیجه این امنه نعمته, نعمته. سلبش فقدانش چیه؟ زلته گرفتاری بدبختیه اون کسی که آواره هست اون کسی که در نامنی به سر میبره آسایش داره آرامش داره از خونه میخوای بری بیرون راهزنه دوزد سخته یک از مسائل هست که علما خصوصا در کتاب های اعتقادی سبب شده این احادیث را بیارن از جمله این احادیث بهش سناد بکنن که یک از معمت ها امنه که خوارج اونو در نظر نمیگیرن خوارج بهش فکر نمیزنن خوارج عقلشون کار نمی کنه تو این باب بخاطر همین رسول الله سرسان در وصف اونها میگه یقراون القرآن قرآن رو می حنا ولیکن راون. سانجراشون کو این نمیره فقط دارن تلاوت میکنن یعنی به قلبشون نمیرسه اقراون القران قران میکنن تلاوت میکنن شاید بگرینن توی نماز ولی کل فقه و فهم نسبت به اون آیات ندارن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به کعبه میکنه بعد میگه که والله خون یک مسلمان است عزیز سره شریف خون یک مسلمان حرمت داره شما چه موقفی داری دارید اگر شخصی بخواد تعرضی بکنه به کعبه خونه خدا الان بگن امریکا میخواد حمله بکنه به مکه مسلمان های دنیا چی میشن میخروشن میجوشن زن و بچه و زندگیشون ول میکنن به خاطر چی حمایت از یا نه این هست اونا غربم میدونن نمیان مستقیما حمله بکنن دارن رایزنی میکنن با ایجاد فتنه ها فساد ها اختلافات درسته برای که اون غیرت کمرنگ بشه اون... اونها هم میدونن که چی خبره میدونن ایمان یعنی چی به خاطر همین نمیان یک دفعه حمله بکنن بخوام بیان اون شعائر دینی ما مسلمان ها را تعروز بش بکنن برانه میریزن در مدت. خب الان مسلمان ها در قبال خون مسلمانی که ریخته میشه را کنید. کعبه شما در مقابلش غیرت دارید رسول الله صلی میگه خون یک مسلمان شرفش مقامش بالاتر از این کعبه مسلمان ها غیرتش نسبت به اون خون ناحقی که ریخته میشه چیه؟ میتوجه توجه بی اهمیت انگار که ای دارن میگوشن. الله شرف داره اون مومن بخاطر اون ایمانش و بخاطر اون اسلامش. ولی نزد خوارج که فقه و فهم ندارن، درک ندارن. خارجی این نیست که بگه من خارجیم. خارجی این نیست که بگه من تابع ذلخوی سرم. نه. خارجی، اون کسی که خروج میکنه برای حکومت، و اون کسی که تجویز میکنه خروج، و اون کسی که فکر خارجی و تکفیری رو داره خارجیه. حالا بخواد بگه من تکفیری هستم یا نیستم، بخواد بگه که من خارجی هستم یا نیستم. شخص در مذهب متعصب شافعیه، حنفیه، حنبالیه، مالکیه، ولی که در عقیده خارجیه، بی ارزش ترین چیز براش خونه، خون ریخته بشه. ام میاد به نظر شما؟ امنیت میاد؟ اون کسایی که فتوا دادن تو سوریه تو عراق تو افغانستان فتوا دادن و میدن به نظر شما با های اونها امنیت اومد سوریه الان جای امنیه نه چند میلیون آواره شدن چند میلیون هنوز همچنان آواره ان در مرز اردن مرز عراق مرز ترکیه گرفتارن خوارن قایق پیدا کنن برن یونان برن ایتالیا برن در کلیسا دینشون عوض کنن. کم شده نتیجه چیه؟ نتیجه قدر آفیت را ندونستن نتیجه ناسپاسی و ناشکری در مقابل های الله جل و علا ناسپاسی که نتیجه چیه؟ پیامده چیه؟ زلت، خاری، گرفتاری، بدبختی وای بر اون شخصی که خون مسلمان زیر چشماش ارزان باشه ناچیز باشه وای بر حالت رسول الله اصلا داره تو رو میده میگه شرف خون مؤمن از کعبه بالاتر این گوش زدت این آویز گوشت بکن مؤمن و مسلمان را در مقابل کعبه الله که درش اشتواف میشه قرار دادا این قد شرف داره مقام داره وای بر تو که اون خون ارزون بشموری ناچیز بشموری وای بر تو وای بر تو چرا چون ایمانی که در دل تو هست رسول الله صلی الله علیه وسلم ب چی تشبیح میکنه یم من دین کمای مرق سهم من اینها وارد دین میشن ظاهرش مسلمانه قرآن خونه ولی که به سرعت وارد دین میشن و به سرعت از اون سید اون تیره اون شخصی که مسلمان شده همچون تیری وارد اسلام میشه و با سرعت رد میشه از لابلای اون سید نه خونی از اون سید و اون تیر چسبیده میده و نه هم گوشتی و نه هم اثری از اون سید. سرعته با سرعت ورد دیدی میشه فقط یه چیز از دین گرفته این کافره اون کافره اون کافره این نمیدونم فلانه با تکفیر کردن فقط از دین همینون فقط میدونه هیچ چیز از اسلام نمیدونه فقط همین یه چیز رو گرفته این همه احادیس این همه شما صبحگاه پا میشید سنت که تو از الله امن و عافیت به طلبی اللهم نسالک العفو والعافیه فی دینی و دنیایه دین و دنیات عافیت امن امنیت سالم باشی در تنت، سالم باشی در جانت سالم باشی در دینت امنیته معافات را که شد بعد از اس بازم از از الله داری میخواهی وقتی که اینو نداشته باشی ازت گرفته بشه چی داری تو تو باید دنبال امن و امنیت باشی نه دنبال خرابکاری نه دنبال فساد نه دنبال بدبختی بخاری و, و ناامنی من اس من اس بح منکم فی سر و معافن فی جسده کسی از خواب بیدار شد، صبح شد، در امن و امنیت بود، در تنش سالم بود، تن سالمی را الله بهش داده، تنه سالم نعمته، تنی که درش بیماری و مرض و در نیست، تنی که درش آلودگی کفر و شرک و بدعت و معصیت نیست گفتیم بیماری ها فقط بیماری های حسی نیستن، بیماری های معنوی هم ما داریم چنانچه در حدیث درس قبلی داشتیم که بخلیک از مریضی های قلبیه بخل، حسادت، بغض، کینه، اینا چیه؟ مریضی ها و بیماری های قلبی که ما باید ازش برحذر باشیم خب که اینجا الان رسول الله صلی الله علیه و سب یک نعمت حسی را یاد میکنن معافات در آفیت در جسد و انسان باید هم عافیت را در جسدش بخواهد، هم در روح و روانش به قلبش و ایمانش شنانشو قفتم دار حديثة شركة العفو اللهم ان يسألك العفة والعافية ودار روايته اللهم ان يسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم ان يسألك العفة والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم استرعوراتي وأمر رعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظماتك أن أقتال من تحتي من هذا أوراد مشهور وصحيح تلب عفية وعافة لرسو بقوه وشامقه على ذلك سو الله وش رسول الله صلی الله علیه و سلام یهچوری بد شرارت میشه و یک قومی را میبینن که مبتلا به مریضی رو میکنه بعد میگه اما ها هؤلاء یسالون العافیه یعنی چرا اینا عافیت را از الله نمی طلبیدن و نمی خواهن انسان انسان از الله بخواهد دنبال درمان خودش باشه جسم تن سالم باشه چون این تن امانت به دست تو تن ناآرام باشه تنت بیمار باشه تو نمیتونی عبادت را به نحوه احسن انجام بدی و از اون عبادت لذت ببری تن سالم چیه؟ نعمته خب این توصیه هست به ما بر ورزش کردن اهمیت دادن به تن با اون غذاهای های سالم با اون ورزش های سالم از اون راه ها قدم زدنها رسول الله صلی الله علیه وسلم گاهی با او بکر سدیر دنپایشو در میوردن حتی پای برهن قدم میزدن اون چیزی که برای ما مهمه یک کاری که ما انجام میدیم در کنار دنیا آخرتمون هم میگیریم این کار رو انجام میدیم به قصد تعبّدت الگوی گیری از رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد قد کان في رسول الله و سوتون حسنا ما شمایل رسول الله صلی الله علیه و سلم بمناقش بود راه می رفتن ما انواع راه رفتن را در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم جایی سری می رفتن جایی سری رفتن با نزدیک کردن قدم ها یک ورزشیه رسول الله صلی الله علیه و سلم تو روی با قدم های نزدیک تو این کارو انجام میدی هم برای صحت جسمت سلامتیت هم برای چی هم تطبیق سنت اسباب اقتدا و الگوگیری از رسول الله صلی الله علیه و سلم خب اول امنیت دوم دو عافیت سوم سو عنده و طعام و یومه شما غذای امروزتون دارید ندارید الان خوردید نخوردید غذاتونو داشتید خوردید فکد حیزت له الدنيا مؤمنه مؤمنی که در امنیته در امن هستید اما هستید یا نه الحمدلله سالم هستید یا نه الحمدلله. قذاتون دارید؟ قضای امروزتون؟ الحمدلله. دنیا رو دارید. چی می‌خواد دیگه از دنیا؟ محتاج چیزی دیگید امروزتون؟ تعمین شد نشد؟ امروزتون تامینه. چرا؟ بحث از زن نشد اینجا. الان کسی که امنیت داره، در جان و مالش. کسی که تنش سالمه. کسی که غذاش داره، مثل اینکه تمامی دنیا رو داره که نمحیت له. الدنيا به حدا فیها مثل مسک تمامی دنیا الله بهش داده. یعنی هر چیزی که در اون دنیا یک شخص بهش نیازمنده رو داره چرا اسم زن نیومد اینجا زن میگه نعمت نیست امنیت قسمت اول بر گفتم وقتی که یک شخص تو بازاره زن رو میبینه لخت و برهنه و فتنه و از این ور اون ور آیا این شخص امنیت در دین و ایمانش داره در تقواش داره یا نداره داره نداره نداره چی چیز امنیت به دینش میاره چون امنیت جای مالیه جای جانیه و جای دینیه این امنیت دینی رو چی میاره نصف ایمانش رو چی کامل میکنه زن زواج درسته زن امنیت میاره برات زن سکونته آرامشته او الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها سکونتی امنیتی امنیت نیست؟ آرامش امنیات اس نعمت زن، نعمت زن و امنیت در دین و امنیت در دین خب وقتی که شخصی امنیت در دین و دنیا و مالش و همسر و فرزندانش داره غذای روزیشو داره تنش سالمه لازمه این نعمت ها مثل که الله کل دنیا را بهش داده لازمه این نعمت ها چیه سپاس و شکر باید نماز فرض پنج گانه تو درست بخونی درست خوندی میخونی یا نمیخونی درست نه نمیخونیم درست شکرمون ناقصه سپاسمون ناقصه حق سپاس این نعمت ها مثل که کل دنیا رو لا بهمون داده خب این همه چیز را الله بهمون داده کل دنیا نباید در مقابلش سپاسمون درست باشه باید سپاس درست باشه نقص در اون سپاس نشانه چیه؟ کوتاهی تقصیر، زعف ایمان پس انسان باید دنبال چی باشه؟ دنبال اصلاح ایمانش اصلاح عبادتش تا اینکه که حق شکر سپاس اون نعمتها را به جا بیاره شکر سپاس فقط در این نیست که تو فقط به نماز بیسی نماز درست بخونی همون دوری از معصیتت سپاسه و بیتوجهیت نسبت به ها و عبادت و نسبت به معصیت و گناه با انجام دادنش دلات بر چی میده؟ کفران نعمت الله این نعمت این چشم اداد این تن سالم این چشم سالم را به داد. بعد باهاش بیر نگاه زنی که بر تو حرام نگاهش بکنی این شکر یا ناشکری این سپاسی یا ناسپاسی شکران یا کفران کفران الله دنیا را به داد. تن سالم را بهداد، غذا را بهداد که در مقابلش شکوزار باشی. تو داری در مقابل ناسپاسی و, و ناشکری میکنی. پس بترس از الله. بترس از این تنی که روز قیامت گواهی بر علیهت میشود. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالو انتخن الله الذي انتخن کلشی به پوستشون به تنشون که گواه میدن بر علیهش میگن که شخص میگه چرا داری گواه میدی بر عليهم که فلان گناه و معصیت انجام دادن چش میگوید گوش میگوید همان اللهی که زبانت را به سخن در ورد موها را هم به سخن در ورده، به زبانت در این دنیا نطق داد اونجا هم تنت الله بهش نطق میدهد دهد قب چه چراpty به بابی داره که اینجا گذاشته بود مؤلف باب المال و صالح للمرء الصالح یک از مال صالح چیه غذای پاک و غذای حلال انده طعام و یومه غذای حلال و پاکت داری درسته یک از نعمت های دنیا رو داری این نعمت خوبه برای کی؟ برای فرد خوب، برای فرد خوب. سایک و سر سفرد آدمای خوب می‌شینند. لا یک طعامک الا تقی. حملشینی ادقیه باشی. از غذاات ادقیه و متقین بخورن. اونایی که دین ایمانشون پاکه، تمیزه. و اونایی که دین ایمانشون پاک و تمیز سعی کنن، غذاشونم، طعامشونم پاکو و تمیز باشه. نه. قال المؤلف رحمه الله باب طيب النفس حدثنا إسماعيل بن أبي ويسن قال حدثني سليمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة الأسلمي أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب بن الجهنية يحدث عن أبيه عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس فظنننا أنه الم بِأَهْلِهِ فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس قال أَجَلُ والحمد لله ثم ذكر الغناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ لا بَأْسَ بالغناء لمن اتقى والصحه لمن اتقى خير من الغناء وطيب النفس من النعم طيب النفس خاکی نفس خوشی نفس نفس دلت خوش باشه دلت خوش باشه دل خوشی نعمت یا نعمت نیست شخص مال نداره بلیش دل خوشی نعمت نه؟ نعمت عبدالله بن خوبه نقل میکنه از اموش رضی الله عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی از خیمهش ظاهرا تو غزوی از غزوات بوده بیرون میاد خرج عليهم و عليه اثر و غسل میاد بیرون و ظاهراً غسلش رو انجام داده بود. غسل جنابت. یعنی با همسرش همبستری کرده و بعد غسلش رو انجام داده. و هو طیب النفس نفس. ظاهر و نحوهی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ما رو باش مقابله کردن. به مقابل با ما آمدن. این اومدن به دیدار با ما و طوری که ما رو دیدیم ظاهرش این بود که دلش خوشه شاده. پاکی نفس یعنی اینو احساس کردیم تو رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی شادی در مظهر و در دل یعنی ظاهر رسالتش چی میرسوند چی گمان کردیم میگه صحابی فضلنا انه لما با اهل گمانمون با این شد که با این مظهر شادی که رسول اومدم به مقابل با ما به دیدار با ما ظاهرش این بود که با همسرش هم بسری کرده چه درسی اینجا میگیرید متأهلین اونایی که ازدواج کردن میدونن هم خودشون هم همسرشون وقتی که همبسری داشته باشن پر انرژی میشن شاد میشن این از آثار چیه حسی و معنوی همبسری اون کسی که نچشیده نمیدونه این لذته خوشی ها لذته احساس سبوک میشه شاد میشه چنگول میشه صحابه زیرک بودن رضی الله عنه اجمعين زیرک بودن ما یک از چیزهایی که تو بحث خانواده و اصلاح مشکلات خانوادگی داریم و حس روح و روانه که زوجین همدیگه رو درک بکنن یک ارتباط روحی داشته باشن با همدیگر غیر از اون ارتباط فطری غیر از اون همبصری همدیگه رو درک بکنن دوست هم همین طور همسایه هم همین طور هم هم هم چرا توصیه شرع کرده به آه... اینکه به فکر همسایت باشی کسی گرسنه نباشه و الی آخر ارتباط روحی که باید بین ماها باشه خب اینجا آثار خوشحالی از رسول از اثر میدونن که دلش خوشه گفت که چی؟ گمانمون بر این شد که این دلخوشی از اون هم همبستری که شاید شک گرفته سبب شده که اینطوری رسول صلی الله علیه و سلم شاد باشه فقلنا یا رسول الله نراک طیب و نفس تعریفی هم نداشتنا مده مستقیمنم گفتم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم شادی قال اجل آری والحمد لله. الله را شک گذار میشه شکران نعمته دلخوشی، شادی، سلامتی، سپاس میخواد. و انسان باید اقرار بهش داشته باشه. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بهش مقر بود. الحمدللہ. ثم ذکر الغنا یاد شدن از رسول الله صلی غنی بودن. وسلم غنی غنیبودن. این غنیبودان چیه؟ ما انواع بینیازی داریم. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه لا بأس بالغنه لمن اتقا. انسان بینیاز باشه از لازم مالی دارایی پول. پول دار باشه، سروتمند باشه، مشکلی نیست اگر متقی باشه، پریزگار باشه، از الله بترسه ترسه یعنی اگر متقی نبود از الله نمی نمیترسه نمی اون پول براش چیه؟ اون پول براش بدبختی خاریه، با اون پول زنا میکنه، با اون پول مشروب میخوره مرتکب حرام میشه بند و بسات موسیقی و ارکست و فلان سر عروسی ها راه میندازه عروسی خودش، دخترش، بچهش اون مال میشه چی؟ و بال گردنش مال خوب آدم داشته باشه ولی در صحیتی که متقی باشه اگر متقی نباشه اون مال نعمت نیست نعمت خاریه زلته نعمت نیست چون در مقابلش به جای شکرانش داره کفران میکنه داره ناسپاسی میکنه و صحتو لمن اتقا خیر من الغنا افیت داشته باشی در تن جانت سالم باشی لمن اتقا و صحت لمن اتقا خیر من الغنا آدم متقی براش صحت و سلامتی بهتر از ثروتمندی و پول و دارایی برای شخص متقی. معیار در دنیا پول نیست. معیار چیه؟ معیار تقوی و پریزگاریست. معیار عبادت. همه خلاق تو الجنه و الانس ایلا لی عبودون هدف عبادتته طاعتت. تن سالمی داشته باشی که بتونی عبادت الله را انجام بدی بهتر از این که چی پول داشته باشی. تو پول داشته باشی ولی سلامتی نداشته باشی. لذت به از هدجات، لذت می‌بری از عبادت. پول داشته باشی یا چشمه داشته باشی؟ کر باشی، کور باشی. کدوم یک بهتره؟ بینا بودن یا پولدار بودن؟ بینا بودن مقدم بر پولدار بودن. الان شما غنی هستید یا محتاج؟ تن سالمی دارید. شما بزرگترین غنا و نیازی رو دارید. چش دارید که با پول دنیا قابل قیاس نیست. دنیا را بهتون بدن، چش را از شما بگیرن راضی میشید؟ بگن بهترین ماشین و بهترین زندگی بهتون میدیم، کورت میگنین، راضی میشید؟ هست روزی بشه؟ والا کلیتو شادت ولی چش را کسی بیده؟ قدره نعمته. کی میدونیم؟ خاطر همین در سوره لاقصم لا و به هذا البلد وان تحل بهذا البلد و والده و مولده لقد خلقنا الانسان في كبد يحسب ان لا يقدر عليه احد يقول اهلكتم مالا لا يحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ب... و و شفتين نعمته در هیو میکنه قسم یاد به کعبه به مکه و به الله مرار یاداوری میکنه به این نعمت بزرگ این نعمت و این بزرگترین بنیازی بعد میاد راحت میگه من ندارم من بدبختم من خارم <تصفيق> نعمت به بزرگی و ثروت به این بزرگی رو رها کردی بعد در مقابلش ناشکری میکنی ناسپاسی میکنی میگی من ندارم رود شد چطور آدم روش میشه بگه من ندارم چطور آدم روش میشه خیلی الان به هر سر زبان‌هاس از انواع کفران نعمت گره شده فلان شده این طور شده انگار که هیچ نعمتی حسن جلوه چششون نیست اصلا, اصلا چیزی ندارن مؤمن غذای روزش رو داشته باشه مثل که کل دنیا رو داره مؤمن بود اینطوری یعنی اگر مؤمن نباشی کل دنیا هم بدن هیچی، چیزی که هیچی نداری پس معیار ایمانه. ایمان ایمان قنای نفس بهت میده سیر دل بهت میده دلت سیر میکنه بی‌نیازی رو الله جل و اعلی چشمت میذاره ولی اون کسی که همش دنیا باشه فقر الله در دلش قرار میده همیشه خودشو فقیر میبینه هر چه قدم داشته باشه خودشو نیازمند میدونه صفات و خصلت های بدیه خب رسول الله صلی الله علیه وقتی که از نعمت ها یاد میکنه تقوای طرف اول تقوا بعد صحت و سلامتی بعد ماله اول ایمانه بزرگترین نعمت نعمت ایمانه بعد از نعمت ایمان نعمت چیه تن سالمه بعد از نعمت تن سالم چیه مال مال نعمت مالاب نعمت در صورتی که چی متقی باشی مهم تقوا و خوش دلی و دل خوش داشتنم چیه؟ نعمت. دلت خوش باشه، شاد باشه اینم نعمت چناچ رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمانه و طيب من النعم انشراح الصدر داشته باشی. الم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. دلت خوشه دوست رفیقی خوبی داری، همسر خوبی داری، بچه و فرزند خوبی داری، دلت خوشه می‌بینی اونها رو خوشحال می‌شی. از دعاهای مؤمنین چیه؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعينا وجعلنا للمتقين إماما قرة أعينا ما دل خشي شش متر خشبك و نكتبه خشي و نكتبه دلت خشبك شش بشتنا روشان كونه بروشان شده چش دلم روشان شش ميشه ششان بو ديدانت و روشان شده خب دلم روشان ميشه دلم خوش إن نعمت يا نعمت نيس نعمت ألم نشرح لك صدق إن شرح السادق نياره این نعمتی که الله دری یادآور میشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم الم نشرح لك صدره مقتضای این نعمت و یادآور شدن به نعمت شکر و سپاس اگر در خودت احساس کردی که چشم دلت روشنه شاده خوشه پس شکرگزار باش گناه و معصیت انجام نده دور باش از گناه و معصیت بارک الله فیکم بله بفرمایید قال المؤلف رحمه الله أخبرني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وقد تقدم حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة رضي الله عنه عري ما عليه سرج وفي عنقه السيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر دي بيسو سيو حديث أز أحوديث صحيح هذا مفرد حديث أناس بن مالك رضي الله عنه حديث قبله إشارة شود قبلاً نخلني. حدیث شماره دیویس و نویده البر و حسن الخلق و الاثم ما حاکه فالنفس قبلن خوندیم دیگه نیاز به تکرارش نیست اما حدیث عناس بن مالک رضی الله عنه که اوصاف رسول الله رسول الله علیه وسلم به ما یاد میکنه تا اینکه ما ازش یاد بگیریم اولگوی خودمون قرارش بدیم كان نبی صلی الله علیه وسلم احسن خوب خوبترین مردم بود خوب داریم و خوبترین داریم احسنه خوبترینه رسول الله صلی و خوبترین مردون بود چه موقع یک شخصی خوبترین میشه شخصی نزاکت خوبه خوبی از کجا میاد از افعال الینکش رفتار درستش حالا اون خوبی با پدر مادر خوبی با دوست و رفیق کلمه خوب را میدونیم کلمه بد هم میدونیم بد بد رفتار بد تعامل بد دهن بد زبان این شخصیه بد اخلاق یا خوش اخلاق بد اخلاق یک شخصی خوش زبان خوش رفتار خوش روست. رسول الله صلی الله علیه و چی بود؟ در تعاملش با دیگران خوب ترین بود. بهترین الفاظ را به کار بود بهترین رفتارها و اخلاق‌ها را داشت. در یاری رساندن، در بداد دوست و رفیق رسیدن، در یاری بمستمدان، به فقرا، به ایتام، هم المؤمنین خدیجه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و می می‌درزيد از غار غار حرا پایین اومده بود، قال ادثرون ادثرون و ذملون ذملون یا ایها المدثر یا ایها المزمل چی گفت به رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ گفت که تو فقران رو میدی دست محتاج رو میگیری و الی آخر از صفات که رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کرد توی که اینچینین خوبی هیچ وقت پاداش آدم خوب بد نیست حد یک امر خوبی هست جلو بروت که الله داره برات ورق میزنه درسته؟ بازر قصه یوسف تعریف وقتی که چون نمیدونستن که یوسفه وقتی که برای اون حاجتشون و رفع اون بدبختیشون اومده بودن نزد یوسف چون در تنگنایی به سر می بردن بود اومدن نزد یوسف نمی که یوسف دینش هم دیانتش هم نمی چیه اومدن نزد یوسف برای گدایی کردن تصدق علینا بعد چی گفتن به یوسف ان الله يجزل متصدقی یعنی الله جواب نی که کسی که صدقه بده میده ده این در تمامی دین هاست و دیانت ها خوبی خوبی میاره چنانچه سلام صل الله عليه وسلم در حدیث میفاید سنایع المعروف تقي مصارع سوء و خوبی ها جلو پیش امت های بعد و گرفتاری ها بعد باختره میگیره جلو مصیبت های بد را میگیره خوبیه خوبی, خوبی میاره رسول الله صلی الله عليه وسلم خوبترین مردم بود سخاوت منترین مردم بود اجود الناس سخاوت منترین مردم بود با بزل مالش با انفاقش و آشجع الناس. شجاعت داشت شجاع بود شجاعت قوت قلبه دلیر بودنه دلیر مرد بود رسول الله صلی الله علیه و سلم ترسی از کسی نداشت لا یخاف فی الله الا متلائم کسی که بلند میشه روغریه مشتکین بر روی کوه صفا میسه ای ابو جلال ای دعوت علنی توحیدیش رو میده اونم در سرزمین شرک و الحاد با این صراحت این شجاعت یا شجاعت نیست شجاعته و کمال شجاعته انسانی که حق را میگه نباید بترشه حتی اگر اون حاکمش نمرود باشه یا فرعون باشه مثل موسی اذهب فقول له قولا لينا بری دعوتش بدید ولی که با نرمی ای موسی ای هارون دعوتگری که ریگی تو کفشش نیست فکر منحرفی نداره دعوتگری که راستین صادق در دعوتش نباید بترشه حتی اگر کشته بشه به شهادت برسه شهادت توفیق میخواد کسانی از شهادت سلب توفیق میشن چه کسانی خواهد اومد شهادت توفیق میخواد عمر امن خطاب رضی الله عنه از دعاهاش چی بود طلب شهادت چون شهادت روزیه شهادت نعمته چرا نعمته رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید کفا به بارقت سیوف لهم فتنه نعمته چون از عذاب قبل در امام میشی اون شمشیری که سبب ریختن خونت میشه سبب چی میشه؟ سبب اینکه از عذاب اللهی در امان باشی در قبرت و در آخرتت و های دیگری که الله گذاشته برای اجر شهادتت در راه الله این نعمته اصلا باید آروزی شهادت رو داشته باشه که این توفیق را الله بهش بده خب الان این صفات رسول الله صلی رسل الله علیه وسلم یاد میکنه بعد میگه که و لقد فزع اهل المدینه ذات و لیله شبی اهل مدينه ترسیدن. یه صدای اومده. یه چیزی شد ترسیده بودن فطلق الناس قبل الصوت اونجایی که صدا ازش می اومد یعنی صدایی بود صدایی که به ظاهر جنگی یا نبردیه. های بلند شدن. دویدم به طرف اون صدا فاستقبلهم النبي صلی الله علیه و سلم قد سبق الناس الى الصوت قبل از مردم رسول الله ص صبقت گرفته بود به طرف اون صدا بد اومده بود رسول الله صلی الله علیه و رو بری اونهایی که تازه دارن میان به طرف اون صدا رسول الله علیه و آله پشت میدان بود قبل از همه رسول الله صلی علیه بلند شده بود رفته به طرف اون صدا هی نمیترشید کمال شجاعته هیچ کسی باورش نبود رفته بود به طرف اون صدا حالا علما یک پرانتز اینجا باز میکنم میگن که انسان در صورتی که ترسی برش نباشه از اینکه دشمن شاید اونجا مثلا او را بکشه و به آخر یعنی این نباشه که خودش رو به tehleke بندازه یعنی امنیت داشته باشه در جانش و بر نه اینکه شخص خودسرانه و بدون مراعات ضوابط و شرایط همینطوری سرپایین بندازه بره وارد معرکه بشه نه خب که رسول الله صلی الله علیه و سلام پیشتاز شده بود رفته بود جلوتر از اون اصحاب یاران به طرف اون صدا بعد با اینها روبرو میشه که تازه دارن میرن چینی میفرماین صلی الله علیه و سلام لن تراعو لن تراعو ترسی بر شما نیست چیزی نیست که شما را به ترسونه، حراصی ورشمانی است، لنت را چیزی نیست که شما را به ترسونه، آنها را داره تزکیم میده چیزی نیست، نترسید. و هو علی فرس لبی طلحة عور یه رسول الله استان سوار اسبی بود، از اسب باهی که ابو طلحة آس به خودش نبود. ادلاح برتری میده جایز بودن قرض گرفتن، سواری برای جهاده در راه الله. رسول الله صل الله علیه و قرض گرفت، بود اسب خودش نبود، آس کی بود؟ اسب ابو یعنی اون از چیزی هم بر روی کمرش نبود زین حالا قلب پتوی چیزی مثلا انداخته بشه که انسان چون همینطوری بخواد روی عصبی یا الاغی بخواد سوار بشه مثلا سبب رنجشش میشه خصوصا اون سخونهای اون حیون اون کمرش عذیتش میکنه این دلاد بر چی میده اینکه رسول الله صلی الله علیه و دیگه منتظر این نشده که زین را بذاره مثلا بر روی اون اسبه و بد بره نه سریع اون اسب رو برداشته و سوار شده بدون اینکه زینی به بر روی اون اس بذاره ما علیه جون یعنی روی اون اس زینی نبود هیچی نگذاشته بود رسول الله صلی یعنی تأکید بر اون عاری بودن اسب از هر نوع نشیمنی که روش رسول الله صلی و آله وسلم بنشینه و فی سيف بر گردن هم شمشیر کرده شمشیر رو گردنش انداخته یعنی آمادگی برای چی جهاد مقابله با دشمن فقال لقد وجدته بحرا اسبب اسبب نبود که تند و تیز باشه یک از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم. که کین شطوره با سوار شدن رسول الله صلی الله علیه و تند و تیز میشه جو رسول الله هست این سخن رو میفرماینه میگه لقد وجدته بحرا یعنی این را تیز و تند دیدم یعنی این عزم باهاش و قدم‌هاش بلنده مثلا دریایی که قد نمیشه هی قدم میذاش تند و تیز بود یعنی تشبیه شده اون دویدن اسب با اون سرعت به دریا دریا چطور قد نمیشه میگن مثلا دریا ببین بخاطر خاطر شش و بخاطر اینکه مثلا دریا پایان و تمامی نداره اسبی که تند و تیزه و نمییسته و خسته نمیشه تشبیه میشه به چی به دریا یعنی این از باب اون کنایه و نمیدونم اون استعاره و تشبیه و از اون بلاغه ای که عرب داشتن و همچینین علا عجم هم تو ادبیاتشون هست هرچنکه متکلمین یک پرانتیزی باز میکنن میگن مجاز نزد شعرا قدیم چیزی بسی مجاز نبود سبحانه که الله بحمده سبحانه الله بحمده و صلی اللہ محمده و صلی